جلسه چهل و ششم کوارته فقسه ونکومه، امام رضا علیه السلام. سلام الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الله علی سیدنا و نبینا، ابو القاسم محمد. واعلوا اهل وقت تارین المأزومین، سیا مبقي الله في روحی روحي وربوكل آليه و الفدا. با ترکل بر خدای متعال و تحصول به پیامر گرامی و احلوی تدهار علیکم السلام بحثمون رو در موازنه مساله با یک بررسی می کردیم و به جلسه قبل به بررسی و شرح و طبیعین قاعده تقدیم المثلت المتحدیه بر مسلت قاسره پرداختیم. در این جلسه قاعده دیگری رو مورد تحمل قرار خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم اگر اجازه فرمایید قاعده دیگری رو در این زمین محل بحث قرار دیم یک مورد پرتکراری هم داریم قاعده تقدیم دیگری مصلحت غایت بر مصلحت وسیله خب مفهوم این قاعده چیست مفهوم قاعده این یک قاعده ای که دو تا مفهوم داره مفهوم غایت و مفهوم مصلحت وسیله مصلحت غایت و مصلحت وسیله اینا هر کدام در فضای فق به ناظر به دستهوندی است. اگر در میسه احکام با یک دیگه ما شاهد ای میتیم باشیم که می توان دو تا در دو دو دسته از احکام رو تمیز داد و از یکدیگه تفکیک کرد. برخی از احکام نسبت به برخی دیگه یه جنبه قاهی دارند و می توانند دقایت و یا هدف، برای برخی دیگر از احکام الهی شمرده شوند اینجا این نکته رو عرض کنم ما چون این روی کردی رو نیاز داریم برای بحث‌های فقه حکومتی برای بحث فقه نظام ساز ما بیایم احکام مختلف رو از هم تمیز بدیم دستبندی بکنیم دستبندی احکام می‌توانه روی کرده در واقع فقه نظامساز رو برجسته بکنه یکی از موارد مهم چیه شما بیایید بگید که مثلا احکام تفکیک، احکام اولویتساز ساز، زی که به احکام راهبردی مشهورن. احکام راهبردی از دیگر احکام خودش مهمه برخی قسم به برخی از این موارد در واقع موارد مؤثر عبارتند از اینکه تفکیک ما بکنیم بین این احکام راهبردی از دیگر احکام یه سری احکام رو ما اسمشون میشه داریم احکام احکام اساسی اساسی نصف از احکام عادی این رو با توجه به احکامی که ما در قانون اساسی داریم الان شما اگر احکام قوانین هر بند قانون اساسی و قوانینی که در قانون اساسی آمدن رو به عنوان قانون اساسی حساب کنید این حکم قانون دیگه خب این احکام نسبت به برخی دیگه اساسی ترند بنیانی و اینها رو نسبت به اونها میتوان جدا کنید یه دسته هم می توان احکام راه بردی. یا مثلا بگیم احکامی که سیاست جنبه سیاستگزارانه دارن احکام در واقع احکام مربوط به اینو سیاستگزاری خب اینجا ما یه سری احکام غایی داریم از احکام سببی جدا میشن خب شما می توانید احکام رو این گونه تقسیم کنید به صورت های مختلف می توان خلاصه احکام رو از یکدیگه دیگه جدا کرد و دستبندی بکرد گونه های مختلف احکام رو از یک دیگه تفکیه یکی از اون موارد اونهایی هستند که جنبه قایی دارند نسبت به برخ دیگه مثلا فرض بگیم یک حکمی به شما بگی آقا برو بالای دیوار یه حکمی هم بگه پله بذار شما مثلا در آیات شریفه اونجایی که میگه مثلا میگه سیانت نفس کن خب اینجا ای احکام مربوط به حفظ نفس حکم اصلی و حکم غایی اما احکامی که کیفیت این کار رو به شما نشان میده بیانگر مسادیق یا حال مسادیق یا بگیم بیانگر مواردیست است که می توانند بسیارت نفس و حفظ نفس کمک کنند از سنخ احکام سببی می باشند خب شما احکام سببی رو که بخواید ببینید میاد مثلا میگی آقا قصاص اگر بکنید در نهایت باعث حفظ جامعه میشه حفظ دماق میشه درسته؟ حفظ نفس یا حفظ دماغ یه حکم اصلیه و سیانت از دماغ خودش یه احکامی میخوا میگه این کار بکن اون کار بکن خب حالا یکی از موارد مهم در این تضاهم اینه که ذکر شده اه... که بعضی از اهداف مقدم اینجوری اینجا من یه نقطه تذکری بدم تذکر تذکر چیه؟ این که مثلا فرض کنیم شما میگید نماز و روزه در مقایسه بین تا... کسب... اه... اه... ت... کسب تحارت کسب تحارت ام از قسل یا اه... ووزو اه... ما میبینیم که, اه... که در واقع اقامه سلات اینها یکی مقدمه حساب میشه درسته یکی از اینها مقدمه برای, برای دیگری لحاظ شده است اما در عالم اعتبار در عالم تشریع و اعتبار الهی اینجوری لحاظ شده اما برخی از موارد جنبه مقدمه وجودی دارند خب کدام رو ما عمدتاً حالا میشه در نظر بگیریم اینا تفاوت می توانند متفاوت باشند احکام مربوط به این دو دسته می توانند متفاوت باشند به چه معنا چون که برخی از اینا مثلا اگه بگیم تزاهم بکنه در تزاهم دسته دوم در واقع اون مواردی که در واقع که برخی از موارد مقدمه وجودی برای بگیم مقدمه وجودی و الی برای دیگر موارد هستند بگیم برای مسببات مسببات و یا معالیل هستند دوست اونا مقدمان علتاً اونا برخی جنبه علّی دارند حیثیت مقدمیت وجودی دارند مقدمیت و فکرالیت برای اون موارد دارند اینها انتفاع در واقع اون مورد اول به انتفاع و عدم تحقق مورد دوم می انجامه در نتیجه مثلا تداهم اونها به یک خلاصه نمیتوان قابل تصویر باشه قابل تصویر نیست چرا که این دو مورد با یکدیگه رابطه وجودی دارند خب پس مراد ما کدامه؟ در نتیجه باید تضاهمه میان غایات و مص... اسباب رو قدر و غایات یا بگیم اح... مساله غایی اینها رو باید چیکار کنیم، محدود کنیم مسلحت مساله غایی با ای... راقه مساله سببی رو باید به گونه در نظر بگیریم که چی باید خلاصه باید این رابطه اونها رو باید مسادیقی مصادیق از تزاهم میان اونها رو در نظر گرفت خلاصه قابل تصور تصویر خار قابل تصویر و تحقق عینی باشه تا ما بعد بتونیم آقا بچه ترجیح بیاریم در غیر این صورت سخن گفتن از ترجیح یکی بر دیگری بی‌معناست چرا زیرا تحقق مقدمه ایلی به تحقق معلول می انجامه چنان که در واقع فرض تحقق معلول بدون تصویر بدون در واقع بدون تحقق لات می مگر آن که چه کار کنیم قبلا مشابهش این داشتیم مگر آن که تحقق یک علت یک معلول به لحاظ یکی از عللی باشه که میتواند به تحقق اون معلول بیانجامه به تعبیر دیگه نه این مورد فقط میتونه در مواردی تصویر بشه که علت انحصاری نباشه خب در این صورت دوستان میتونند بگن که ما در واقع تضاهم بین این تا رو تصویر کنیم تا نوبت به این مورد برسه خب پس بر میگردیم اونجایی که یک علت و معلول با هم وابستگی ندارن در این صورت ما مواردی رو باید بیاریم در مقایست با این احکام هونهای مختلفی وجود داره خب اونجایی که خلاصه بتوانیم این تظامن رو تصویر کنیم در مواردی که بتوان میان مساله غایی و مساله سببی ما در واقع سببی و وسیله یا به تعبیر دیگه وسایل وسایل به چه مرنه یعنی اسبابی که اونها منجر میشه وسیله دست... وسایل دستیابی به اون موارد به مساله غایی تضاهمی ایجاد شود این قاعد بیانگر در واقع ضرورت ترجیح مصلحت غایی خواهد بود چرا؟ چون که اینها رو باید توضیح بدیم منطقه اینجا ما باید اینجا شرط کردیم که وسائلی باید ایجاد بشه که تزاهم باشه خب این پیش یک مفاهم ما روشن کردیم مفهوم مصلحت غایی یک مصلحت خاص خودشه مصلحت سببی یا مصلحت وسیله هم خودشه مصلحت غای... غایت به غایت بچ بین معناست که غایت میت تر... غایت هر فعل و حکم شرعی میتواند غایتی در واقع مسلحتی تلقی شود مسلحتی داشته باشد خب این مفهوم مفهوم شناسی خب ما اگر مسلحت قاید رو لحاظ بکنیم اون مسئله با خود اون در همراهی داره و مسلحت وسیله چیه؟ در واقع مسلحت وسیله وسیله سبب امریس که برای دستیابی به قایت مورد نیازه چرا که برخی احکام برخی از احکام شرعی میتوانند وسیله دستیابی به در واقع دستیابی به اون قایت و مصلحت رایت باشند خب اینجا وسیله است بنابراین یه ویژه اینجا یه بحثی داریم پس اینجا یه پیش نیازهایی داریم پیش پیش برشت پیش فرضی داریم پیش فرض ما چیه یک وجود تضاحم پذیرش مسادقی از تضاحم در واقع تزاهم پذیری مساله غایات و مساله سبب و وسیله اینجا این پیشفرز اول ماست خب پیشفرز دیگه اینی که چیه؟ امکان رفع تزاهم بین اونها وجود دارد اینم یک پیشفرز دیگه خب، پیشفرز اولین بود مصادیقی از تضاهم مورد در واقع امکان دارند حالا مسئله دوامی که امکان رفع تضاهم هم وجود داره خب این تذکری که ما گفتیم در اینجا بود یعنی ببینید بعضی از موارد پس گفتیم که اینا تضاهم پذیر باشن بعد رفع تضاهم هم امکان داشته باشه تا نوبت به مقایسه این دوتا برسه ما اگر بخوایم این دوتا رو مقایسه بکنیم باید بگیم کسا این تضاهم وجود داره یا نداره اینها باید یه جنبه رابطه ای داشته باشند پیش دیگه چیه؟ رابطه در واقع غایت مساله رابطه مساله قایت و مصالح در واقع بگیم مصلحت اول خود قایت رو بگیم قایت و وسیله رابطه ای وجود شناسانه دارند چنان در برخی از موارد این رابطه به صورت اعتباری لحاظ شده است خب ممکنه واقعا بعض از اونها رابطه رو نداشته باشند ولی یعنی چون که ذات اونها این نیست ولی وسیله اون حساب شده با تسامح بگیم مقدمه اون حساب شده خب در واقع وسایل حیثیت جن... ای نسبت به غایات دارند اینم یک پیشفرزه مسادقی از تضاهم پذیری رو ما بعد اینجا در لابلای این موارد پیدا کنیم کدام موارد هستند چه مواردی امکان تضاهم بین اونها وجود داره خب اینها این موارد در صورتی خلاصه امکان داره که افعال مربوط به اونها تمایز ذاتی داشته باشند خب ممکنه یه جای ذاتی نداشته باشند خب اینجا ما آمدیم گفتیم که مثلا اون کهارت و سلات تضاهم داشته باشند یا در بین اجزاء نماز ممکنه چنین ویژگی باشه که بنابراین خلاصه باید قابل تفکیک از هم باشند و برخی از اونها مقدمه وجودی دارند اونهایی که جنبه وجودی دارند امکانش وجود نداره خب امکان در واقع. هم امکان تضاهم باید وجود داشته باشه امکان تضاهم شرط خلاصه پیش فرض این مورد امکان تضاهم خب در مسادیق این یه مقوله هست امکان ای ای اینها باید امکان رفع تضاهم هم باشه مورد دیگه در مواردی که گره خوردن به هم دیگه از دو امر از حیث وجودی به یک گره خوردن و مربوطند نمیتوان انتظار شکلگیری تضاهم و پس از آن رفع تضاهم خلاصه در اونها تصویر کرد نمی توان انتظار داشت که بتوان بین اونها شکلی گیری پس از رفع تضاهم را در بین اونها تصویر کرد این مقوله مهمیه که ما باید این رو در نظر بگیریم خب شما یک مست... بد تحلیلی بکنید تصویر مسئله کنید تا بعد بتوانید به این نتیجه برسید که مسادیقش چگونه است تصف... تحلیلش چگونه است و تطفیقاتش چگونه است خب ما مفهوم شناسی کردیم، توضیح فل جمله قاعده دادیم. اینجا یه تطبیقاتی هم در نظر بگیریم تا بعد ببینیم مستندش چگونه میتونه باشه. تطبیقات قاعده به چه گونه است؟ شما الان یک مورد رو میخواد بگید یکی قایت هست، یکی سبب و وسیله است اگر خاطرش شریفتون باشه تو اون بحث اهدافی که از جناب استاد احمد الیوسفی بلگوی که شما بر رفع تضاهم بیان می کردن یه این حالت اینطوری بود یه جای بین نزدیک بود از همین مقولم الهام گرفتیم در منابع بحثشون رو هم بعضی مواردی که اوورده بودن به این کمک می کرد می گفتن اگر تضاهم بین هدف پایین تر با هدف بای... بالاتر باشه ما یکی رو باید ترجیح بدیم بعد لا خودشون یکمی گیر کرده بودند که ما اونجا همین تفکیک رو کردیم گفتیم آقا مقارض رو از هم تفکیک کنی تا دوچاره تزبزب نشید بعضی مصادیق گفته بودند که نمیشه هم میل پیدا کرده بودند به این که به هدف پایین و بالا تطف... تفاوت قائل بشن و بگن اگر تضاهم شد اون بالایی مقدمه بعد یه جایی هم نه انگار نمیشه محمدیم همین تطبیق رو اونجا کردیم گفتیم مقام موارد جا هم تفکیک کنید پس اصل ایده اینه که این موارد با هم تضاهم پیدا کنن در اهداف پایینی خب اح... ما گفتیم تو احکامه مثلا اگر فرض کنیم به حال این وسیله رو ما ببینید میخواییم مثلا بگیم حفظ دما بکنیم این غایت حفظ دماغ و نفوس این به مسابه غایت باید یه نکته هم قبلش عرض کنم در اون مواردی که ما گفتیم گفتیم که یه جای ممکنه مسئله علل دو تا ستا باشه اونجا کم وضعیت فرق میکنه. یه علتی رو شما دارید خب به این صورت بود که در واقع یک علت اگر معلولی، به حالا در بحث فلسفه میکنید نپذیرنا در عالم در عرف فقهی بگیم در عرف فقهی حالا وحیباقه لزمان خیلی با یه قید غیر فلسفی بگیم نه لزمان با نگاه کاملا فلسفی چون ممکنه اونجا بگن که آقا هر موردی خودش یه علت ممکنه بگیم که اصلا نصداقش این با فرق میکنه اصلا علت انحصار غیر علت انحصاری ممکنه قبول نکنن یرچه اگرچه در نگاه فلسفی لزومن نتوان در واقع من غیر انحصاری رو تصویر کرد اما می توان اگر بتوان در معلولی در عرف فقهی نلوزومن با نگاه کاملا فلسفی سوراخ گرفت که بتواند از طریق علل مختلف تحقق پیدا کند در این صورت میتوان از تزاهم تا اندازه میتوان تا اندازه ای زمینه ای زمینه ای بحث از تزاهم قایت و وسیله رو ترسیم کرد تا اندازه حالا باید چقدر یک کمی زمینه ایجاد میشه به این صورت که مثلا شما میگی آقا اگر من این قایت رو من از رو به دست بخوام بیارم این وسیله رو باید فدا کنم حالا اگر تصویر بتوان کرد اگر اگر نتوان خلاصه چونین می رو تصویر کرد اصل قاعده از میان می رود. این نکته خیلی مهمه این یه مسئله مهمه که اگر ببینیم در به صورت علالی می توانیم در تعدد علال بحث رو مطرح کرد چرا؟ چون که چرا میگفتیم تا اندازه چونکه چون که در واقع ما به این نکته میخواستیم برگردنیم که بود و نبوده این دوتا با همه اما چرا که در علل غیر انحصاری نبود یک علت لزومند به معنای انتفاع معلول و غایت در اینجا نیست چرا که با در علل غیر انحصاری میتوان یکی از علل رو محقق تصویر کرد در واقع قابل تحقق تصویر کرد و در نتیجه نبود یک علت دیگر لزوما به معنی انتفای معلول نخواهد بود و اون معلول قابل تحقق از طریق علت دیگر علت نخست خواهد بود نکتش این بود خب پس اینجا ما اگر بخوایم تضاهم بین مسلحت قایت و مسلحت وسیله تصویر بکنیم بحث ما این خواهد بود که مثلت قایت رو مقدم بکنیم خب حالا مست این مواردش چیه مثلا در فرض بگیریم یا علل غیر انحصاری یا فرض دیگه حالا ما الف رو بگیم حفظ دما و نفوس از طرق مختلف میتوانه انجام بگیره خب اینجا این هدفه این امر واجد مصلحت غایته خب اگر ما بگیم که مقدمه‌ای داره که اون مقدمه با این تضاهم داره شما یا باید پول بدی جان تو حفظ کنیم یا پول بدیم اون مقدمه رو خلاص محققش کنیم حالا تصویر این مثال بعضی موارد آمده اما بازی کمی مواردی که بی اشکال باشه خب با اگر تزاهم بیدا بکنه تزاهم این مورد با مقدمات با در واقع بگیم احکام وسیلعی این احکام وسیلعی حفظ دماغ خلاصه مقتضیه ترجیح خوده حفظ دما وصیانت از نفس است شما فرض بگیریم باید دفع دشمن بکنید تا حفظ جان ب... حفظ جان شما حفظ بشه اگر مثلا احکام وسیله ای حفظ دما مانند چی بگیم مانند مبارزه با دشمن باید با دشمن مبارزه کنید تا جانت حفظ بشه حالا اگر شما در مبارزه در اگر در قطعال با دشمن در جنگ حالا موردی بگیم در در اگر درگیری با دشمن منجر به کشته شدن باشه باید از درگیری پرهیز کرد خب اگر درگیری با دشمن و در واقع درگیری با دشمن که به قصد چیه به عنوان رسیله حفظ جان مسلمانان اگر درگیری و جنگ با اونها منجر به کشته شدن شود خب مثلا این باید دست بشه خوب این خیلی مطلقه لذا ما دی حالا یه موردی رو محدودتر باید بگیم اگر بگیم درگیری منجر اگر درگیری بیزابطه مثلا بگیم زابطه و بدون وسیله بدون ابزار باید پرهیز بشه خب چرا؟ چون که منجرب کشته شدن میشه کشته شدن جان مسلمانان فراوان بشه ما این رو باید ترک کنیم چرا این میخواست حفظ جان مسلمانان بکنه این وسیله بود اما در یه جایی ما دیدیم نه در یه مسادقی در یه قید این بزنیم در برخی موارد اگر این خلاصه لازم ثمره برعکس بده شما میخواهید در مذاکره بکنید مثال دوم مذاکره وسیله جلب در واقع منافع منافع ملی ملی و اسلامی است اما اگر پس هدف چیه به عنوان هدفه به عنوان اهداف اه، اه، اه، اه، فعالیت سیاسی سیاس در واقع اهداف سیاست خارجی است اما اگر خود مذاکره زه تأمین اینا باشه اهداف سیاست خارجی نادیده می گرفته میشه اگر خود مذاکره به ناتوان اصل مذاکره، اصل یا کیفیت مذاکره نتوانه تأمین کننده این اهداف باشه و تضاهم بین اونها حاصل بشه، باید اصل مذاکره کنار گذاشته شود. چرا؟ برژه اگه ضراری هم بزنه. حالا ضرر دیگه از بحث ما الان خارجه. اگر اصل مذاکره نتوان تأمین کننده باشه و تضاهم بین این مورد باشه باید این مقوله رو کنار گذاشت و راهکار دیگر رو پیدا کرد. و ما باید بگردیم تضاهم بین در واقع مسلحت این مصداق رو حل کنیم این مصداق از تضقوموم بین مسلح آیت و مسلحت وسیله خلاصه باید چی بشه اه، اه، تحقق پیدا بکنه خلاصه باید از این چشمپوشی کرد. شما میخواید بگید که مثلا تأمین منافع مالی و تأمین اهداف منافع ملی و اسلامی باشه. اینجا اگر اصلش تضاهم کنه مثلا چی و به طور نمونه مفاسد دیگری رو به دنبال داشته باشه. البته حال این ممکنه از بحث خارج بشه این بحث ما الان تضاهم بین دوتا تا حالا یه بی ویژه بگیم بی ویژه اگر مفاسد دیگه‌ای رو هم به دنبال داشته بشه بعد اصل مذاکره کنار گذاشته بشه تضاهم بین این بود مذاکره منجر به تامین مصلحت نمیشه خب اون هدف بود خب اینجا ما مذاکره رو گذاشتیم کنار و به عنوان خلاصه یه امر مزاحم تلقیش کردیم با تبیین و تکمیل بحث ان به جلسه بعد بحث رو تکمیلش رو موکول می‌خوایم کرد الحمدلله رب العالمین